این داستان موهای تلائی زن فقیری بود که از تولد پسر کوچکش بسیار خوشحال بود. پسرک خالی بر پیشانی داشت. برای همین بینی کردند که در چهارده سالگی با دختر پادشاه ازدواج میکنه. دست بر قضا پادشاه به صورت ناشناس به اون ده اومد. از مردم جویای اخبار اونجا شد. بهش گفتن که تازگی ها زنی یه بچه به دنیا آورده که خالی بر پیشونیشه. پیشگویانم گفتند که این خال خوشیام نه و این پسر در چهارده سالگی دختر پادشاه رو به همسری میگیره. پادشاه که مردی بدتینت بود از شنیدن این خبر ناراحت شد. نزد پدر مادر اون دختر رفت و با رفتاری به ظاهر دوستانه و مهربانانه گفت انسانهای نیکوکار فرزندتان را به من بسپارید من به بهترین شکل از او مراقبت می پدر و مادر اول مخالفت کردند. ولی وقتی شخص ناشناس پیشنهاد کرد به اونا طلا بده، پدر و مادر فکر کردند که این فرزند باید خوب و شاهانه تربیت بشه و رشد کنه و بالاخره موافقت خودشونو اعلام کردند. پادشاه بچه رو گذاشت توی جعبه و با اسمش از اونجا رفت. وقتی که خیلی از اونجا دور شد، به رودخونه عمیق رسید. جعبه رو با بچه به داخل رودخونه انداخت. همون همونطور که به راهش ادامه میداد پیش خودش گفت با این کار دخترم رو از شر یک خاستگار به درد نخور نجات دادم ولی جبه در آب غرق نشد مثل قایق روی آب به حرکت در اومد و حتی قطره آب هم توش نفوذ نکرد جبه فرسنگ ها راه رو پیمود تا از سرزمینی که تحت سلطه اون پادشاه بود خارج شد به یه آببندی کنار یک آسیاب رسید و متوقف شد دست برقضا آسیابان با نزدیک ساحل رودخونه وایساده بود و خوشبختانه به موقع متوجه جبه شد فکر کرد که ممکنه توی جبه یه چیز با باشه با قلاب جبر از آب بیرون کشید وقتی درشو باز کرد دید یه بچه زیبا بیدار و سر حال توش دراز کشیده اون دوتا فرزندی نداشتن و خیلی خوشحال شدن که خدا پسری به عنوان یک هدیه براشون فرستاده آسیابان و زنش اون بچه رو بزرگ کردن و خیلی شرافتمندانه و جوانمرد بار بردن اتفاقا روزی از روزا پادشاه از کنار آسیاب میگذشت که طوفان و رد و برق اونو وادار کرد به داخل آسیا پناه ببره وقتی چشمش به اون جوان افتاد از آسیابان پرسید که آیا اون جوان بلند بالا پسرشه؟ آسیابان جواب داد نه اونو پیدا کردم چهارده سال پیش توی جعبه توی آبند پیداش کردم و ما هم که بچه نداشتیم اونو به عنوان بچه بزرگ کردیم و پیش ما زندگی میکنه پادشاه بلافاصله فاصله متوجه شد که این جوون همون بچه خوش اقبالیه که خودش به آب انداخته. بنابراین خیلی ناراحت شد ولی ناراحتیش رو پنهان کرد و با یه لحن مهربونانه گفت دست همسرم برسونه به خاطر زحمتی که کشیده دو سکه طلا بهش میدم. آسیابان جواب داد ما در خدمت این پادشاه؟ بعد جوون صدا کرد که آماده اجرای فرمان پادشاه باشه. آنگاه پادشاه نامهی برای همسرش نوشت و توی نامه نوشته بود که پسری که این نامه رو به تو میرسونه باید کشته بشه. وقتی برگشتم انتظار دارم کار کشتن و کفن و دفنش تموم شده باشه. جوون نامه رو برداشت و براه افتاد. مدتی در جنگل انبوه سرگردان بود. وقتی تاریکی فرارسید سوسوی نوری از دور دوردست جوان رو به طرف نور کشون و دید که یک خونه کوچک وسط جنگله و یه پیر کنار آتیش اونجا نشسته. پیرزن وقتی جوان رو دید ترسید ازش پرسید از کجا اومدی؟ چی میخوای؟ جوونم جواب داد من از آسیاب اومدم یه نامه برای همسر پادشاه دارم ولی راه و گم کردم میشه امشب اینجا بمونم پیرزن گفت جوون محسوم اینجا خلوتگاه راه زناس. اگر اونا دستشون بهت برسه تو رو میکشن جوون گفت من از اونا نمیترسم هر موقع دلشون میخواد بیان ولی من انقدر خستم که دیگه حتی یک قدم هم نمیتونم بردارم بعد روی نیمکت دراز کشید و بلا فاصله به خوابی عمیق فرو رفت. توری نکشید که راه سنا را برگشتن به خونه و درباره اون جوون که روی نیمکت دراز کشیده بود از پیرزن پرسیدن. پیرزن گفت: اون جوون معصومیه. راهشو توی جنگل گم کرده. منم از روی دلسوزی اونو پذیرفتم. او حامل یه نامه از پادشاه به ملکه است. راهزنها به طرف جوون رفتن، آهسته نامه را از جیبش بیرون آوردن و خوندن، ولی دیدن که نوشته باید حامل نامه رو بکشین. اونو با همه سنگ دلیشون دلشون برای جوون سر سردسته راهزنها نامه رو پاره کرد و نامه دیگه نوشت. به محض اینکه حامل این نامه وارد قصر شد، دخترمون رو به ازدواجش در بیارین نامه رو گذاشتن تو جیوه جوون و صبح که بیدار شد اونو ره سپار قصد کردن جوون همین که به قصد رسید نامه رو به ملکه داد ملکه هم اونو خوند و بلافاصله بهش عمل کرد و دستور داد جشن عروسی باشوگوی برگزار کردن و به این ترتیب شاهزاده خانم به عقد پسر خوشقبال اقبال در اومد. او جوان جذاب و دوست داشتنی بود و خیلی زود دختر پادشاه عاشق شد و در کنارش احساس خوشبختی میکرد حالا بشنوید از پادشاه که وقتی به قصد رسید دید تمام پیشگویی ها درست از کار در اومده و پسر خوش اقبال با دخترش ازدواج کرده پادشاه گفت چطور چنین اتفاقی افتاد؟ من که دستور دیگه ای داده بودم. ولی ملک نامه رو بهش نشون داد. خودتون ببینین تو نامه چی نوشتین؟ پادشاه نامه رو خوند و متوجه شد این همون نامه نیست که خودش نوشته. بنابراین از جوون پرسید که اون نامهی که بهش داده رو چی کار کرده؟ جوونم گفت من خبر ندارم. لابد همون شبی که توی جنگل خوابیده بودم نامه رو عوض کردن. خشم سراب وجود پادشاه رو گرفت تو نمیتونی به این راحتی از کنار موضوع بگذری کسی که با دختر من عروسی میکنه باید ستاره موی طلایی دیو جنگل سیاه رو برای من بیاره تا دیر نشده باید این کارو انجام بدی وگرنه نمیتونی همسر دخترم باقی بمونی جوان خوش اقبال گفت هرچی زودتر این معایه طلایی رو برای شما تهیه می کنم. من ذره از دیو هم نمی اینو گفت و خداحافظی کرد و راه سفر رو در پیش گرفت. رفت و رفت و رفت تا بیش شهر بزرگ رسید. او موقع پشت دروازه شهر منتظر موند و اجازه ورود خواست. نگهبان پرسید دنبال چه هستی و چه می دانی؟ من همه چیز میدانم. نگهبان گفت: پس می توانی لطفی در حق ما بکنی و به ما بگویی که چرا چشمه اصلی شهرمان خشک شده؟ و دیگه آب شیرین ازش نمی جوشه. حتی آب معمولی هم دیگه ازش جاری نمیشه. جوان جواب داد: وقتی برگشتم جواب سوالتو میدم. فعلا صبر کن. بعد به راهش ادامه داد تا به یه شهر کوچکی دیگر دیگه رسید. جلوی دروازه شهر نگهبان ازش پرسید دنبال چی هستی و چه میدانی؟ پسرت جواب داد من همه چیز میدانم. نگهبان پرسید پس لطفی به ما بکن و بگو چرا روی یکی از درختای شهر که قبلاً سیبای طلایی میداده دیگه فقط برگ رویده میشه. اون گفت صبر کن، وقتی برگشتم جواب سوالتو میدم. جوان همچنان به سفر خودش ادامه داد تا به یه رسید که باید با قایق ازش رد بیشد. قایق همون پرسش رو ازش کرد یعنی پرسید که چیکار داره و چی میدونه؟ پسرک هم جواب داد که همه چیز میدونه. قایقران گفت پس میتونی لطفی به من بکنی و بگی چرا من مجبورم با قایقم هر روز برم اون طرف رودخونه و برگردم و نمیتونم کارمو تغییر بدم؟ پسرک گفت صبر کن. وقتی برگشتم جواب رو میدم. به محض اینکه به اون طرف رودخونه رسید، فرودی جنگل سیاه رو که غار دیو توش بود پیدا کرد. قار کم نور و تاریک بود. دیو هم توی خونه نبود ولی مادر پیرش روی یه چارپایه نشسته بود و مراقب عوضا بود پیرزن سرش رو بلند کرد و گفت چی میخوای به نظر میرسه که مثل ما رزل و دیو نیستی؟ اون جواب داد من فقط سه موی طلایی از سر دیو میخوام وگرنه همسرمو از دست میدم پیرزن جواب داد این توقع خیلی زیادیه اگه دیف بیاد و تو رو اینجا ببینه رحم نمیکنه با وجود این اگه به من اعتماد کنی سعی می کمکت کنم. بعد پیر زن اون پسر رو به یه مورچه تبدیل کرد و گفت بیا داخل لباس من برو اونجا جات امنه. جوون گفت باشه ولی سه مطلب دیگم هست که باید از اونا سردر بیارم. یکی اینکه که چرا چشمهی که قبلا ازش آب شیرین میجوشیده حالا خشک شده و حتی آب معمولی هم ازش جاری نمیشه دوم این که چرا درختی که قبلا میوه طلایی میداده حالا چیزی جز شاخ و برگ نمیده سومم اینکه چرا یک قایقران باید مدام عرض رودخونه رو طی کنه بره و بیاد و هیچ تغییری توی کارش ایجاد نشه پیر زن گفت اینا پرسش های سختیه تو ساکت و آروم و سر جای خودت بمون وقتی دیو اومد من سعی میکنم ستاره مو ازش بکرم و برای سوالات هم جواب بگیرم. دیر وقت شد و دیو به خونه اومد. همین که وارد شد پرسید چرا هوای خونه اینجوری شده بوی آدمیزاد میاد مطمئنم که آدمیزاد اینجاست. بعد بلند شد و تمام اطراف قار رو بو کشید ولی چیزی دستگیرش نشد مادر پیرش اونو سرزنش کرد و گفت من تمام روز مشغول نظافت و گردگیری و رسیدگی به امور خونه هستم اون وقت تو آخر شب برمیگردی و همه چیزو به هم میریزی من دوباره بعد تمام کارها رو از نو شروع کنم همیشه هم که دماغت پر بوه، بشه شامتو بخور دیو به حرف مادرش گوش کرد و نشست سیر و پر قضاشو خورد بعد از غذا اظهار خستگی کرد مادرش بهش گفت دراز بکش بیا سرتو بذار رو پای منو بخواب دیو هم همین کارو کرد و اینقدر احساس راحتی کرد که خیلی زود به خواب رفت و شروع کرد به خورناس کشیدن هم پیرزن یه تاره مو از سرش کند و اونو کنارش گذاشت. دیو بیدار شد و هوار کشید. چی کار می مادر جواب داد. خواب بدی دیدم و این باعث شد که مواتو چنگ بزنم. دیو پرسید. چه خوابی دیدی؟ پیرزن گفت. خواب چشمهی رو دیدم که در بازاری قرار داشت و انگار قبلا ازش آب شیرین می ولی دیگه آنچنان خشک شده بود که حتی آب معمولی هم ازش نمیآمد به نظر تو تقصیر کیه؟ دیو جواب داد زیر سنگی ته اون چاه یه وزق هست که باید کشته بشه اون موقع آب شیرین دوباره جریان پیدا میکنه دوباره پیرزن موهای دیو رو نوازش کرد تا خوابش برد و خورناساش شروع شد. پیرزن دومی مرا از سرش کشید. دیف بیدار شد و با عصبانیت پرسید: این دفعه چه اتفاقی افتاده؟ پیرزن جواب داد: ناراحت نشو، یه خواب بعدی دیگه دیدم. دیو پرسید: این بار چه خوابی دیدی؟ خواب دیدم در سرزمینهای دور. درخت میوهی هستش که قبلا سیبای تلایی به بار می آورده. ولی حالا فقط شاخ و برک داره فکر می کنی علتش چیه؟ دیف گفت مردم اون سرزمین باید بدانند که موشی سرگرم جویدن ریشه های اون درخته اگر اون موش رو نابود کنن درخت دوباره سیب تلایی به بار میاره. ولی اگه موش؟ به خوردن ریشه اون ادامه بده درخت به زودی خشک میشه. اگر باز هم رویای تو خواب راحت منو آشفته کنه این دفعه میدونم چیکار کنم. پیرزن با مهربونی باهاش صحبت کرد و موهاش رو نوازش کرد تا دوباره به خواب رفت. بالاخره پیرزن سومین تار موی طلایی رو کند. این بار دیو با خشم از خواب پرید. نهرهی کشید و نزدیک بود دست به کار وحشتناکی بزنه که پیرزن باز هم تونست آرومش کنه. بعد پرسید چطور میتونم از شر قابای بد خلاص شم؟ دیو با کنجکاوی پرسید این بار چه خوابی دیده ای؟ خب این بار؟ خواب یه قایقرانو دیدم که شکایت داشت همیشه خدا سرگرم بردن مردم از یک ساحل رودخانه به ساحل دیگه رودخانه و هرگز وقت فراغت نداره دیف جادوگر جواب داد چه مرد احمقی اون میتونه از هر کسی که وارد قایق شد خواهش کنه پارو رو در دست بگیره همین که یک نفر دیگه پارو رو در دست بگیره قایقران از شر این کار خلاص میشه دیو دوباره سرش رو گذاشت روی دامن پیرزن و خوابید پیرزن که دید تار موی دیو رو کنده و پاسخ سه سوال رو هم پیدا کرده، گذاشت دیو تا صبح استراحت کنه روز بعد همین که دیو از خونه خارج شد، پیرزن مرچه رو از لای لباسش بیرون کشید و دوباره اونو به شکل همون جوان خوش اقبال جذاب درآورد آورد و بهش گفت بفرمایید اینم ستاره موی تلایی دیو که میخواست و پاسخ سوالات رو هم که شنیدی. جوان جواب داد بله همه کلمه های اون رو شنیدم و هیچ وقت فراموشتون نمیکنم. پیرزن گفت من کمک کردم تا مشکلاتت حل بشه حالا هرچی زودتر به خونت برگرد. جوان دوباره از لطف و مهربونی پیرزن تشکر کرد و در حالی که در انجام همه کارا موفق شده بود خوش و خورم راه بازگشت رو در پیش گرفت. او اول به قایقران رسید. قایقران هم ازش پرسید که آیا بالاخره جواب سوالش رو پیدا کرد؟ جوان گفت اول منو به اون طرف رودخانه ببر بعد جواب سوالت رو میدم. وقتی به اون طرف ساهد رسیدن او جوابی رو که از دیو شنیده بود به قایق گفت اولین کسی که سوار قایق شد پارو رو به دست او بسپر تا اون شخص به اجبار جانشین تو بشه. جوان به سفر خودش ادامه داد تا رسید به شهری که درختی بی حاصل داشت. نگهبان در انتظار جوابش بود. جوان همان پاسخی رو که از دیف شنیده بود بازگو کرد. این را هم گفت که حتما باید موشی رو که داره ریشه ها رو می بکشین تا سیب طلایی دوباره به عمل بیاد. نگهبان ازش سپاسگزاری کرد و برای پاداش دو الاغ با بار طلا بهش داد. جوان خیلی زود به اون شهر بزرگ رسید که چشمه آب شیرینش خوشگیده شده بود. نگهبان جلو آمد تو جواب سوالش رو بگیره. جوانم گفت زیر سنگ ته چاه یک وزقی هست که باید بگردین و پیدا کنین و بکشیدش. اگر اون وزق رو بکشین دوباره آب شیرین جاری میشه. اون نگهبان هم به نشانه قدردانی دو الاق با بار طلا بهش هدیه داد. بالاخره جوان خوش اقبال با اون همه ثروت به خونهش برگشت. همسرش از اینکه در کارش موفق شده بود خیلی خوشحال بود. جوان ستاره موی طلای دیو رو و طلاهایی که به دست آورده بود رو نزد پادشاه برد. وقتی چشم پادشاه به اون همه طلا افتاد، خوشحال و راضی شد و گفت: تو همه شرایط لازم رو داری. حالا من قانونن اجازه میدم که همسر دخترم باشی. ولی داماد به من بگو که چطور این همه طلا به دست آوردی؟ اینا گنجای با ارزشی هستن. اونا از کجا پیدا کردی؟ پسر جواب داد من با یک قایق از رودخونه عبور کردم و آن سوی رودخانه زیر شن طلاها را پیدا کردم. پادشاه با شوق و ذوق پرسید اگه منم برم میتونم همینقدر طلا پیدا کنم؟ جوان جواب داد بله کاری نداره هرقدر قدر که دلتون بخواد میتونین پیدا کنین. قایقرانی هم اونجا هستش که شما رو با قایقش میبره اون طرف رودخونه. شما هم میتونین یه کیسه همراهتون ببرین و هر چقدر دلتون خواست تلا جمع کنین. پادشاه تماع پیر با عجله آماده سفر شد. وقتی به قایقران رسید با اشاره دستور داد که اونو به اون طرف رودخونه برسونن. قایقران به پادشاه گفت سوار قایق بشه اما به محض اینکه به اون طرف رودخونه رسیدن پارو رو به دستش داد و خودش پرید و از قایق پیاده شد به این ترتیب پادشاه به مکافات اون همه گناهی که مرتکب شده بود رسید خلاصه کسی نمیدونه آیا هنوز اون پادشاه سرگرم بردن مردم از این ساحل به اون ساحل هست یا نه احتمالا هنوز به کار قایقرانی مشغوله چون از اون روز به بعد کسی پادشاه رو در شهرش ندید و در اون شهر کوچیک هم هیچکس از اون به بعد حاضر نشد به جای پادشاه پارو بزنه.